بهار که جایش را به تابستان سپرد نام نگاری های عزیز و الله هم بیشتر شد این پیش آمد غیر که مانند رازی سر به مهر مخفیش می کرد الله را گیج کرده بود از هر منظری که نگاه می کرد میدید خیلی با هم فرق دارند و سر در نمیآورد که چطور میتوانند این همه موضوع برای نامه نوشتن به یکدیگر پیدا کنند حتی مطمئن نبود اگر یکی بپرسد چه چیز مشترکی دارید تواند جواب بدهد عزیز زهارا در نظر الله مثل پازلی بود که سعی می کرد قطعاتش را پیدا کند و سر جای خودش بگذارد با هر ایمیلی که از او می رسید چیز جدیدی در بارش می فهمید و بخشی دیگر از پازل را کامل می کرد گرچه همه تابلو هنوز به صورت ما اما باقی مانده بود اما می توانست پیش خودش بگوید در باره نویسنده ملت عشق معلومات زیادی به دست آورده. مثلا میدانست عزیز عکاسی حرفه است. کنجکاو بود بداند به دلیل شغلش این همه در گشت و گذار است یا اینکه به دلیل علاقش به گشت و گذار این شغل را انتخاب کرده. عزیز روح ها را داشت. در نظر او رفتن به جاهای دوردست دنیا با رفتن به پارک محله فرقی نداشت. حتی از دشوارترین سفرها هم نمی حاسید. سیاهی ثابت قدم بود. مانند دلاغ پشتی که کائنات را بر پشتش حمل میکند. به هر جای دنیا که میرفت حس میکرد در خانه خودش است. در سیبری، در شانگهای، در کلکته، در کازابلانکا و غیره اسباب سفرش یک کوله پشتی بود و یک نی. در جاهایی که غیر ممکن بود الا روی نقشه پیداشان کند، دوستان قدیمی داشت. جایی نبود که نرفته باشد. نگرانی های رفتن به مملکتی بیگانه روبرو شدن با کارمندان اخمو و بی گمرک، دشواری گرفتن ویزا، انگلهای موجود در آبهای آشامیدنی، مسمومیت غذایی، ناراحتی‌های گوارشی، خطر دزدی، خلاصه مسئلههایی که کابوس هر توریستی هستند، در نظر عزیز مسائلی پیش پا افتاده و قابل اغماس بودند در حالی که الله دنیا را به دو بخش کشورهای امن اروپایی و سایر مناطق بی فرهنگ تقسیم میکرد شرق و غرب و شمال و جنوب در نظر عزیز یکی بود زندگی الله به برکهی راکت میمانست و زندگی عزیز برودی خروشان الا از قدم برداشتن میترسید و عزیز چهار نل میتاخت تاخت الا پیش از برداشتن هر گامی هزار جور فکر و خیال میکرد عزیز اول گامش را بر می داشت بعد فکرش را می کرد البته اگر فکر می کرد شخصیتی سرزنده و رنگارنگ داشت صاحب ایدئال و شور و هیجان بود اسمهای زیادی داشت و هر اسمی هم داستانی طولانی الا خودش را یهودی نه به معنای دینی بلکه به معنای فرهنگی لیبرال، روشنفکر، دموکرات، معدب، متمدن و گیاهخواری بالقوه میدانست که تصمیم دارد خیلی زود خوردن گوشت را بالکل کنار بگذارد. همه چیز و همه کس را به دو گروه تقسیم می کرد. آنهایی که دوستشان دارم و آنهایی که ازشان متنفرم. نمیشد گفت به معنای کامل کلمه لا عدری است. هرچه باشد هر از گاهی همراه خانوادهش چند امر واجب دینی را به جا راستش الا از دین و دینداری خیلی خوشش نمی آمد. فکر می کرد امروز هم مثل زمانهای قدیم وحشتناکترین و خونبارترین منازعه به نام دین صورت می گیرند. با خود می گفت دین چه فایده ای دارد. جز اینکه باعث کشت و کشدار شود طاقت تعصب دینی را نداشت هر دینی که باشد با این حال معتقد بود گرایی اسلامی از گرایی مسیحی و یهودی خطرناکتر است البته این را برای عزیز اعتراف نکرده بود فکر می کرد همه دینهای آسمانی به هم شبیهند. اما اسلام دینی سختگیران و و تر است. به خصوص برای زنها راستش الا روبینشتاین از دور دلش برای زنهای مسلمان میسوخت. همهشان را در یک کفه میگذاشت و خودش را خوششانس میدانست که یکی از آنها نیست. عزیز اما موضوع دین و ایمان را جدی می گرفت و به لحاظ معنوی شخصیتی قوی داشت تا آنجا که ممکن بود از سیاست روز پرهیز میکرد در زندگی از چیزی نفرت نداشت واژه نفرت را از واژه‌نامه شخصیش پاک کرده بود گیاخوار که نبود هیچ آشق خوردن گوشت هم بود. خودش می گفت کباب مغز پخت را با هیچ غذای دیگری عوض نمی کند. عزیز اسکاتلندی بود. در عواست دهه 1970 در حالی که آتیستی دا بود یک بار مسلمان شد. به شوخی می گفت پس از کریم عبدالجبار پیش از یوسف اسلام از آن روز به بعد با عارفان همه دینها و فرهنگها همچله و همکاسه شده بود. از وقتی خودش را می شناخت مخالف خشونت بود. معتقد بود علت درگیریها و جنگ های این دنیا مسئله دین نیست، مسئله زبان است. می گفت آدمها مدام دچار سوء تفاهم می و در یکدیگر به اشتباه قضاوت می کنند. با ترجمه های اشتباه زندگی می کنی. در چنین دنیایی چه معنایی دارد که بر صحت موضوعی هرچه باشد اصرار بورزیم. حتی امکان دارد راسخترین اعتقاداتمان از سو ساده سرچشمه گرفته باشند راستش در زندگی نیازی نیست بر موضوعی پافشاری کرد زیرا زندگی یعنی تغییر مدام عزیز و الله در مناطق زمانی متفاوتی زندگی میکردند. هم به معنای واقعی هم به معنای مجازی در نظر الله زمان به معنای آینده بود. بخش قابل ملاحظه ای از روزش به برنامه ریزی کردن برای سال بعد، ماه بعد روز بعد حتی لحظه بعد میگذشت. حتی کارهای پیش پا افتاده ای مثل رفتن به بازار یا تعمیر ماشین لباسشویی در این ماجرا سهمی داشت. کوچکترین جزئیات برنامه ریزی و به شکل فهرست دقیق و مرتب و تاریخ خورده در کیفش جا می گرفت که در نظر عزیز زمان به معنای اکنون بود هر چیزی جز زمان حال به نوعی خطا محسوب می شود. به همین سبب معتقد بود عشق نه به برنامه‌های آینده ارتباط دارد نه به خاطرات گذشته عشق صرفا هم اکنون و همین جا بود در نظر عزیز در یکی از نامه‌هایش نوشته بود صوفی‌ام ابن الوقتم فرزند اکنون الا در جوابش نوشته بود این حرفت برای زنی که کارش شده کند در گذشته و برنامه ریزی کردن برای آینده آنقدر عجیب است که